سلام بر مخاطبان عزیز کانال هزار افسان، کانالی که همیشه باستون داستانها و افسانه‌های پر رمز و راز داره. امروز با قسمت نهم داستان زیبایی ملک جمشید در خدمتتون هستیم. پس همراه ما باشید تا لحظات دلچسبی رو تجربه کنید. در قسمت قبل تا اون جایی گفتیم که شاهزاده ملک جمشید که سوسنجادو اونو به شکل آهو در آورده بود به دست کنیزهای جهان آرای پری افتاد. اونا اونو به قصرش بردن و اونجا شاهزاده تا تونست عدای آدمها رو در آورد تا جهان آرای پری متوجه بشه و بهش کمک کنه تا از جلد آهو بتونه بیاد بیرون. ولی متاسفانه اون متوجه نشد تا اینکه بعد از دو روز دایه او سر رسید و متوجه شد که او آدمی زاده و بعد هم با جادویی که بلد بود اون رو دوباره به شکل آدم در آورد. ملک جمشید خیلی خوشحال شد و خدا را شد کرد و همچنین خوشحال تر شد که جهان آرای پری رو هم پیدا کرده و میتونه به عهدی که با ملک فریدون برای پیدا کردن جهان آرای پری بسته بود عمل کنه و اینک ادامه ماجران. و اما ملک جمشید که دیگه از جلد آهو خارج شده بود تمام داستان زندگی خودش رو از ابتتا تا انتها برای جهان آرای پری تعریف کرد و گفت خدا را شکر می اگرچه که سختی زیادی دیدم ولی عاقبت تو رو پیدا کردم و دای خاتون هم منو از این جلد آهو نجات داد حالا یه سوالی ازت دارم دلم میخواد که راستش رو بگی اونم اینه که آشق چی که حسی هستی که دائم براش گریه میکنی دختر ابتدا تفره رفت اما در آخر گفت من اگه اسم ملک جمشید رو میبرم که منظورم خود تو بودی چون غیر از تو کسی رو نمیشناسم که بتونه دردمو رو دوا کنه و خدا را هم شکر میکنم که تو رو دیدم و به آرزوم رسیدم ملک جمشید گفت هر دردی داشته باشی تا اونو درمان نکنم آروم نمیشینم به شرط اون که راستش رو بگی دختر هم گفت وقتی که از تلسم حمام بلور منو نجات دادی چشم من به ملک فریدون افتاد و تیر عشق اون به سینه من نشست و عاشقش شدم و وقتی که منو مرخص کردی خجالت کشیدم که اظهار عشق بکنم بعد هم که به صورت کبوتری در اومدم و به ولایت خودم برگشتم و از اون زمان تا کنون در آتش این عشق می سوزم و اون بیوفا هیچ از حال من خبر نداره و نمی دونه که در فراغش چه می از این درد فراغ نزدیک بود که به حلاکت برسم که خدا تو رو رسوند. اگه اون روز من منو مرخص نمی کردی، محال ممکن بود که از شماها دور بشم. و حالا هم در ازای خدمتی که به تو کردم و از جلد آهون نجاتت دادم در حق من مردونگی کن و من رو به وصل ملک فریدون برسون که دیگه طاقتم چاق شده. ملک جمشید که این حرفا رو شنید گفت ای ملک خاطر جم باشه که ملک فریدون هم به درد تو گرفتاره و تیره اشق تو به اونم خورده و شب و روز در فکر تویه. اون روز هم بعد از رفتن تو به سر و صورت خودش میزد تا حدی که بیهوش شد. من فکر کردم که مرده اما بعد از ساعتی بهوش اومد و دامن منو گرفت و گفت ای شاه من آشقی روی جهان آرای پری بودم و از خجالت چیزی نگفتم و اگه به وصلش نرسم هلاک میشم. هرقدر اون رو دلداری میدادم بیفایده بود. بعد هم گفتم بابا جان این دختر پریزاده و معلوم نیست کجا زندگی میکنه و کسی از ولایت و وطنش خبری نداره چطور ممکنه که به وصلش برسی؟ ولی اون اونقدر گریه وزاری و التماس کرد که دلم به حالش سوخت و بهش گفتم تا تو رو بی وصل این دختر پریزاد نرسونم آروم و قرار نخواهم گرفت دختر از شنیدن این حرفها از خوشحالی فریاد زد و خودش رو به پای شاهزاده انداخت و گفت ای جمون باید برای من هم قسم بخوری تا خاطرم جمع بشه. شاهزاده هم گفت به سر پدرم و به مردان عالم قسم میخورم که آروم نگیرم، تا تو رو به وصل یارت برسونم ولی چند روزی به من مهلت بده تا انشاالله تلسم عآسف رو بشکنم و اکواندیو رو بکشم و یار خودم ماه عالمگیر رو هم نجات بدم دختر گفت ای بی داد بیداد فکر نکنم که نه من و نه تو به وسال یارهامون برسیم چرا که تا سوسن جادو رو نکشتی نمیتونی به تلسم آسف بری و اگه همه ی مردم جهان هم جمع بشن نمیتونن یک مو اثر سوسن جادو کم کنن چون بدن او تلسم بنده و هیچ سلاحی به بدنش کار نمیکنه و اگر هزار شمشیر و خنجر رو هم به بدن او بزنند، یک سر مو از او کم نخواهد شد. با وجود سوسنجادو چطور میخوای به تلسم آسف بری و یارت رو نجات بدی؟ با شنیدن این حرفا دود از کله ملک جمشید بلند شد و گفت ای نازنین راست گفتی چرا که من شمشیر کشیدم و بر کمر سوسن جادو زدم اما تیقه شمشیرم برگشت و نبرید. بعدم خودش بهم به گفت خنجرت رو به سینه من بزد منم خنجر رو کشیدم و چنان زربه ای زدم که اگر به سنگ خارا می زدم سنگ خارا به دو می شد. ولی بر سینه اون هیچ اثری نکرد و خنجر هم شکست اون وقت اون من رو شبیه آهو کرد. حالا ای ملک دستم به دامن یه فکری بکن شاید که بتونم اون ناپاک را از بین ببرم و یارم و نجات بدم. که این همه رنجها رو برای ماه گیر کشیدم و اون بیچاره هم به خاطر من به دست دیو گرفتار شد. دختر ای جبون از منم کاری برنمیاد و بهتره که تو هم این فکر رو که اونو نجات بدی از سرت بیرون کنی که بیفایده است و راهی نداره. اما هر چه گفت بیفایده بود و ملک جمشید اصرار داشت که باید بره و ماه آلمگیر رو نجات بده. این بود که دوباره گفت ای ملک جمشید پس سه روز به مهلت بده تا برم به شهر و پدرم رو از اومدن تو خبردار کنم که تعریف تو رو خیلی پیشش کردم و اون مشتاقه که تو رو ببینه و میخواد خدمتی رو که برای آزادی من از تلسم حمام بلور کردی رو تلافی کنه شهزاد ملک جمشید گفت «ای ملکه حاضر نیستم به شهر بیام و پدرت و طایفه پریزادها منو ببینند و بدونن که ماه عالمگیر در تلسم آسف به دست اکواندیر گرفداره و من ناتوان در نجاتشم. بهتره که دوباره سر به بیابون بذارم که یا خداوند می میسازه و تلسم رو میشکنم یا اینکه هلاک میشم که چنین زندگی به کار من نمیاد بعد هم بلند شد و با دختر خداحافظی کرد و بعد هم دست دایر را گرفت و گفت ای دای خاتون تو حق بزرگی گردن من داری که منو از جلد آهو نجات دادی. حالا منو حلال کن. اگر موندم و مرادم رسیدم حتما خدمت تو رو تلافی میکنم همه حاضران به گریه افتاده بودم. دل دایه حسابی به حال شاهزاده سوخت و پس گفت ای جوان گریه نکن من بهت کمک میکنم و نمیذارم تو بیابون از بین بری تو رو به باغ سوسن جادو میبرم و از جون خودم هم میگذرم من عمرمو کردم و پیرم ولی تو جوونی حیف که کشته بشی و ادامه داد ای جوون من و سوسنجادو پیش یه استاد درس خوندیم اما در اون زمان اون بدن خودش رو با خنجر تلسم بند کرد ولی نمیدونم اون خنجر رو کجا پنهان کرد اگر بخت و اقبال همراه تو باشه و سوسنجادو در خواب باشه امیدوارم که بتونم اون خنجر رو در باغ و قصرش پیدا کنم که در این صورت با اون میشه بدنش رو از تلیزم بندی خارج کرد و جونش رو گرفت. ولی اگر اون ناپاک بیدار بشه هم منو هم تو کشته میشیم حالا خاطر جمع باش که تو رو میبرم تا دیگه خدا چی بخواب شاهزاده گفت چه وقت باید رفت؟ دایخاتون گفت بهتره که ملکه به شهر بره و پدرش رو از اومدن تو خبردار کنه و تو به خدمت شهبال شاه پری بری تا اون تو رو ببینه بعد هر وقت خواستی با همدیگه میریم و من تو رو به باغ سوسنجادو میرسونم القصه شاهزاده حرف دایر رو قبول کرد و جهان آرای پری هم به شکل کبوتری دار اومد و به بارگاه شحبال شاه رفت اونجا از جلد کبوتر خارج شد و در برابر پدر ایستاد و شحبال شاه از دیدن فرزند خیلی خوشحال شد و گفه ای فرزند کجا بودی حال و احوالت چطوره؟ جهان آرای پری هم گفه ای پدرجان در باغم بودم و مجدهی براتون آوردم، پادشاه گفت چه مجده ای؟ دختر گفت پدرجان ملک جمشید پادشاهزادی زیرباد که تلسم حمام بلور رو شکست و افغاندیو رو کشت و منو از تلسم حمام بلور نجات داد به ولایتمون اومده و در باغ من میهمانه اما میخواد به تلسم عاصف بره و سوسن جادو و دیو رو بکشه و ماه عالمگیر دختر ملک نعمان شاه و ملک دارا پسر پادشاه سرندیب رو نجات بده پادشاه تا این حرف را شنید از خوشحالی سی بار از جاش بلند شد و باز نشست و گفت ای امیران من آرزو داشتم این جوان آدمیزاد رو ببینم و خدمتی بهش کنم و تلافی کنم شکر خدا که به این آرزوم رسیدم بعد هم به وزیرش گفت بگو شهر رو آزین کنند و تختی از طلا بردار و برو به باغ و ملک جمشید رو با احترام تمام بردار و بیار. وزیر هم چنین کرد. و خلاص شاهزاد ملک جمشید به خدمت شهبال شاه پری رسید و تعظیم کرد و گفت قربانتان گردم عمر و دولت جلال و پادشاهی شما رو خداوند زیاد کنه. در این لحظه عشق و محبت شاهزاد ملک جمشید بر دل شهربال شاه افتاد. کمی اونو نگاه کرد و بعد گفت ای جوان آدمیزاد، زاد جای تو در پهلون من بیا و کنارم بشین که تو برای من از جان عزیز تاری. و بعدم گفت ای جان فرزاد خواهش می کنم سرگذشت خودت رو برای ما بگو. تا امیران بدونن کی و چطوری تونستی دختر من رو از تلسم حمام بلور نجات بدی. شاهزاده هم سرگذشت خودش رو از اول تا همون زمان برای پادشاه و امیران تعریف کرد. دل همگی به احوال شاهزاده سوخت و شحبال شاه گفت ای فرزند قصه نخور که تو مثل فرزند من هستی و در عوض اینکه دختر دخترم رو نجات دادی همین امروز تاج شاهی بر سر تو میذارم و تو رو پادشاه پریزات ها میکنم و دخترم جهان آرای پری رو هم به تو میدم خودم هم به خلوت نشینی میرم و به دعا و عبادم می پردازم. شاهزاده خندید و گفت اگه به جهت پادشاهیه که من خودم پادشاه شهر زیربادم، اگه به جهت دختر جهان آرای پریه که جهان آرا مال ملک فریدونه که این دو هر دو آشق هم هستند و منم با ملک فریدون عهد کردم که جهان آرای پری رو بهش برسونم و اگر بند از بندم جدا کنن خیانت نمی و دیگه اینکه ماه عالمگیر خواهر ملک فریدون آشق من و منم عاشق اون و دیو اون رو به تلسم آصف برده و من همه رنجها رو به خاطر اون کشیدم تا اونو نجات بدم اون توی تلسم آصف چشم راه منه و من هم بعد از این همه زحمتها که کشیدم نهایت نامردیه که ملک فریدون چشم هم باشه و یه جا یارم در دست اکواندیو اسیر باشه و یه جا پدر و مادرم در انتظار دیدارم باشند و من اینجا خوش باشم. ای پادشاه اگه با من سر مهربونی داری و میخوای خدمتهای من و تلافی کنی میتونی اون چی رو که میگم گوش بدی و کمکم کنی شاه گفت ای فرزند بگو تا بدونم چی میخوای شاهزاده گفت خواهش من اینه که چون باغ سوسن جادو رو بلد نیستم دای خاتون رو همراه هم کنی که منو به اونجا برسونه و خواهش دیگم هم اینه که اگه انشاءالله سوسنجادو و اکواندیو رو کشتم و تلسم آصف رو شکستم و یارم رو نجات دادم که باز خدمتتون میرسم و اگر خدای نخواست کشته شدم و برنگشتم بفرستید برند و ملک فریدون رو بیارند و دختر جهان آرای پری رو براش عقد کنند. و خبری هم از من به ولایت زیرباد برای پدرم بفرستید تا اونا بدونن که چه بر سر من اومده پادشاه و همه اهل بارگاه به گریه افتادند و بعد از چند لحظه پادشاه گوه ای فرزند بیا و این راه رو نرو. سوسنجادو بدنش تلسم بنده از بین نمیره. اکمان دیف هم خیلی قویه. مدت یه ساله که بانوی حرم من رو همین مادر جهان آرای پری رو از میان قصر و باغش دزدید و برد در تلسم آسف من دو بار سپاه دیو پری جمع کردم و به جنگش رفتم تا بانوی حرم خودم و نجات بدم ولی هر بار شکست خوردم و برگشتم برای همین میگم ای فرزند بیا و بیخیال این راه و کار شد شاهزاده گفت منو نصیحت نکنید که بیفایده است شاید خداوند وسیلی بسازه و من در این راه پیروز بشم و بانوی حرم شما رو هم نجات بدم و خدمت به شما رو کامل کنم. القصه هر چقدر پادشاه و امیران خواستن نظرش رو عوض کنن نشد که نشد و گفت که خواهم رب چون اگر کشته هم بشم مهم نیست عاقبت همه است و اگر انشاالله پیروز بشم اسمم تا قیام قیامت باقی میمونه که نقشی است که از ما به یادگار میمونه پادشاه که چنین دید گفت پس امشب رو پیش من بمون فردا هر جا خواستی برو ملک جمشید هم قبول کرد و مجلس بزمی راه انداختن تا وقتی که شب شد و پادشاه دست شاهزاده رو گرفت و به خلوت خانه خودش برد. جهان آرای پری هم اومد. پادشاه به اون گفت: ای فرزند این جوان میخواد به تلسم عاصف بره. مادر تو رو هم نجات بده. هرچی اونو از این کار من میکنم قبول نمیکنه و میخواد فردا صبح بره. حالا تو اونو نصیحت کن. شاید به حرف تو بخونه و نره. دختر گفت پدرجان از این جوان دست بردار که عشق ماه عالمگیر چنان بر اون مسلطه که دست بر نخواهد داشت. بهتره که اونو به حال خودش بذاریم تا ببینیم خدا چی میخواد. شحبال شاه گفت ای جوان میخوایی به جنگ اکفاندی برو نه نرو من دخترم جهان آرای پری رو به کنیزی به تو بخشیدم خودت میدونی ملک جمشید گفت اون چه گفتم که همونه و خلاف نداره جهان آران نامزد ملک فریدونه که هر دو عاشق همانو باید به هم برسند. پادشاه از دخترش پرسید دلت میخواد تو رو به ملک فریدون بدم؟ دختر سر به زیر انداخت و چیزی نگفت. پادشاه متوجه رضایت اون شد و گفت ای جوون. اگه انشالله برگشتی بانوی حرم من رو هم آوردی من دست جهان آرای پری رو به دست تو میذارم و به هر کی که دلت خواست اون رو ببخش از نظر من هیچ ایرادی نداره حالا بگو بدونم چند نفر میخوایی همراه به تلسم ببری؟ ملک جمشید گفت دای خاتون منزل سوسنجوادو رو بلده و با من عهد کرده که منو به باغ برسونه شاهبال شاه فرمان داد که دایه رو بیارد. دایه اومد و پادشاه گفت ای دایه باید ملک جمشید رو به باغ سوسن جادو ببری و به سلامت برگردونی و اگر این کارو بکنی هر چی بخای بهت میدم. دایه گفت قربانتان شوم من این جوون رو میبرم و هرچی هم که از دستم بر بیاد کوتاهی کنم انشاالله که سوسنجادو خواب باشه که در این صورت به سلامت و پیروز برمیگردیم ولی در صورتی که بیدار باشه اگه هزار جونم داشته باشیم یکیش رو هم نمیتونیم برگردونیم و هر دو کشته میشیم شانسات گفت همینقدر تو منو به باغ سوسنجادو برسود دیگه با هات کاری ندارم دایه خندی و گفت ای آدمی زاد اگر من در باغ سوسن جادو نباشم و خنجر تلسمند رو پیدا نکنم هزار سال هم که بگذره تو نمیتونی اونو از بین ببری شاهزاده گفت خدا کریمه به هر جهت اون شب رو به سر بردند و صبح طلو شاهزاده آماده شد و با همه خداحافظی کرد و دای خاتون هم وردی خوند و خودش را شبیه اقاب بزرگی کرد و شاهزاده هم بر پشت او سوار شد و به هوا رفتند و تا دو روز پرواز کردند قروب روز دوم نزدیک باغ سوسنجادو جادو رسیدند بر زمین نشستند و دایی خاتون وردی خوند و از جل اقاب بیرون اومد و گفت این باغ سوسنجادو جادوست حالا تو اینجا باش تا من برم و سر و گوشی آب بدم ببینم سوسنجادو در چه حالیه؟ دایه رفت و بعد از ساعتی برگشت و گفت ای جوان مجده که سوسنجادو در خوابه و فردا یک ساعت از روز گذشته بیدار میشه. اگه امشب خنجر رو پیدا کنیم سوسنجادو کشته میشه و اگه پیدا نشه ما فردا کشته هایم شد. حالا تا دیر نشده پاشو که بریم. شاهزاده بلند شد و با دایه وارد باغ شدن. چشم شاهزاده به همون آهوها افتاد که اون رو شاخ می زدن. اونا زیر درختا خوابیده بودن. دایه آهسته گفت ای جوون تو پنهان شو تا من برم دنبال خنجر بگردم اما شاهزاده قبول نکرد و گفت که منم همرات میام دایه گفت پس تا صبح یک کلمه هم با من حرف نزن شاهزاده هم قبول کرد دایه کتابی از زیر بغل خودش در آورد و در پای برج باغ زانو بر زمین زد سر کتاب رو باز کرد و شروع به خوندن کرد که ناگهان برج خراب شد و به زمین ریخت دایه بلند شد و پای برج دیگه ای رفت و کتاب رو خوند اون برج هم خراب شد. القصه دایه پای هر برجی که میرفت و کتاب می خوند اون برج خراب می شد. پا نزدیک طلوی آفتاب شد اما خنجر پیدا نشد چشمهای شاهزاده اشکی شد و سر به آسمون بلند کرد و گفت پروردگارو میدونی که یه ساعت دیگه سوسنجادو بیدار میشه و ما کشته میشیم پس ما رو ببخش و به ما رحم کن که ناگهان آخرین برج از هم شکافته شد و صندوقی آشکار شد دایه فورا از جا پرید و گفت ای جوون خدا رو شوی بخت و اقبالت کمک کرد و خنجر پیدا شد شاهزاده خوشحال شد و دایه دوید و در صندوق رو باز کرد و خنجری که در اون بود رو بیرون آورد و به دست شاهزاده داد و گفت ای جوون دیگه از سوسنجادون نترس این خنجر رو به سینه او بزن در جا کشته میشه ولی بعد از کشتن اون ناپاک خدا به فریادت برسه که منو نخواهی دید و در تلسم خواهی افتاد و نمیدونم که چی به سرد میاد. شخصاد گفتایی جان خدا کریمه و با او خداحافظی کرد و گفت سلام منو به خدمت شهبال شاه و جهان آرای پری برسون و بگو که از دعا فراموشم نکنن. و خنجر رو به دست گرفت و راه افتاد. دایه گفت من در اطراف همین باغ هستم تا ببینم چه میشه و بعد هم از باغ بیرون رفت. شاهزاده هم به طرف قصر رفت. آهوها دور برش رو گرفته بودند و دست و پاش رو میپوسیدند و گریه میکردند. شاهزاده خنجر رو بهشون نشون داد که خاطر جمع باشید. با این خنجر سوسن رو می کشم و شما رو هم از جلد آهو نجات میدم تا به پای قص رسید و وارد قصر شد. دید که در میان تختی تختیست و روی تخت هم سوسن جادو در خواب و صدای نفیرش بلند. ملک جمشید به بالای سرش رفت و دست رو بلند کرد که بر سینه اون ناپاک بزنه. جادو بیدار شد و شاهزاده رو دید و گفت: ای آدمی زاده سر از جلده آهون نجات پیدا کردی این کار دای خاتون جهان آرای پریه چنان بلایی سرش بیارم که مرغان هوا به حالش گریه کنند. اما ناگاهان چشمش به خنجر تلسم بند افتاد و بدنش به لرزه در و گفت ای جوان دستم به دامنت منو نکش که بد کردم و خواست که فرار کنه اما شاهزاده عمونش نداد و خدا رو یاد کرد و خنجر بر سینه اون ناپاک زد که صدای فریاد سوسنجادو به هوا رفت و بر زمین افتاد و جان در این لحظه صدای رعد و برقی بلند شد و سائقه برخاست و بادی وزید و انگار که قیامت به شده شاهزاده هم از خوش رفت و بر زمین افتاد و وقتی به هوش اومد خودش رو در بیابانی دید، از جاش بلند شد و به هر طرف که نگاه می کرد باغی بود و نقصر و تا می کاری می کرد بیابان بود و بی آب و آبادی از تشنگی زبانش در دهانش خشک شده بود و از گرمی هوا عرق از همه جاش سرازیر بود سرگردان و حیران بود که این چه وزیست که داره و شروع به نالیدن کرد که ای خدا آخه چه سرنوشتیه که من دارم پروردگار و خودت وسیلی بساز و منو یا مرگ بده یا نجات بده که دیگه طاقت ندارم و جونم به لبم رسیده حالا تشنه و گرسنه توی این بیابون چیه کنم؟ اما بعد از مدتی به خودش اومد و با خودش گفت دل قافل بلند شو و از یه طرف بیابان برو شاید به جایی برسی آبی پیدا کنی. بلند شد و شمشیرش رو به گردن آویخت و خودش رو به خدا و یک طرف بیابان رو گرفت و رفت. یارب یارب میگفت تا قروب آفتاب که خسته و حلاک شده بود. اما تپه ای رو در برابر خودش دید از اون بالا رفت و به بالای تپه که رسید دید اون طرف تپه چمنزاری سبز و خرم و در یک قسمت اون هم چشمش به باقی افتاد که در اون درختان سر و سنوبر و کاج و شمشال سر به آسمان کشیده بودند شاهزاده تا چشمش به باغ افتاد انگار که پادشاهی روی زمین رو بهش داده باشد خوشحال شد و جونی گرفت و شکر خدا رو کرد و به سمت باغ حرکت کرد. رفت تا به درش رسید و دست بر بردر زد و در باز شد. دوستان و همراهان همیشگی قسمت نهم این داستان زیبا هم به پایان رسید. ولی اگه میخوایم بدونید در این باق شاهزاده چه دید و چه شنید و چه اتفاقاتی براش افتاد، منتظر باشید تا به زودی در قسمت بعدی براتون روایت کنید در پناه نور و عشق الهی باشید آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های زفر کنین؟ جایی که پری ها و کتوله ها زندگی می کانال هزار افزان همونیه که دنبالشیه که دنبالش. جایی که